دیوانه چشمای تو من دیوانه چشمای تو تو سنم دل رو من من دیوونه زنجیریم تو صاحبم و آقای من دیوونه دل بیقراره آروم نداره تو را دوست داره دیوونه مست حسینه به و به دیوونه مجنونه داره شباقم داره مجنون داره دیوونه مستو گلاندا می زنه بر سر بشق های دریا مولا ابی عبدالله ابی عبدالله یا مولا یا مولا ابی عبدالله یا مولا ابی عبدالله یا مولا قللار یانان لا من دفنه کربلا تم من دیوونه کربلاتم تو پر لوای دل من من همیشه گیرم تو عالم تو وا می کنی مشکل من دیوونه دل بیقراره آروم نداره تو رو دوست دیوونه مست حسینه به و وزیر دینه دیوونه همیشه تنها عاشق سقاست نوکر زهرا ستیونند انگار گرب وره غمی نداره چون حسین ناره یا مولا ابی عبدالله ابی عبدالله یا مولا یا مولا یا مولا رو خوندم واسه ای دونه ها من دیوونه میخونتم من دیوونه می میخونتم تو ساقی این میخونه ای من سجد کن کربلاتم تو رهبر این دیوونه ای دیوونه مصد حسینی میخونه هر شب مولاتی زینب دیوونه کارش جنونه کارش بخونه شده دیوونه دیوونه شاد و دسته همیشه مسته عاشق پرست دیوونه کارش همیشه لنه اومعیست عبد رو است یا مولا عبی عبدالله عبی عبدالله یا مولا آ یا مولا بیت و سلام الله عل